اوز اللهم الشيطان رجیم بسم الله رحمن الرحیم الحمد لله و السلام و السلام و عسیل الله و على آله و صحبه من الله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالی و بارکاته خدابنده تبارک و تعالی و بسیار سفاس بذاریم و تشکر میکنیم شکر تنها راه رشد و کمال و تنها راه نجات هست تنها وسیله حفظ و پایداری نعمتهای های خدا هست لئین شکر کن را از ایدم نکن حالا این شديد این شدید عذاب که انسان سر به نعمت بشود این شرط نیست که احبا جهنم باشد یا عذاب نازل بشود همین که نعمت ازش گرفته بشود یا برکت نعمت از نعمتهای او گرفته بشود همین کافیست برشد امشب شب جمعه هست و شب جمعه ای که از زمانهای مبارک هست که خداوند در خانه هر مسلمانی فرستاده مثل مکانهای مبارک نیست که خود بری دنبالش بتونی ورسی یا نتونی ورسی و این زمان مبارک در خانه هر کسی با پای خودش میاد شب جمعه روز جمعه شب قدر نمیاد در خانه ماه مبارک رمضان این هم میاد در خانه به هر خونه ای سر میزنه در کل دنیا هر چه حسنات و خیرات و برکات و کارهای خوب و اعمال صالح است جمع میکنه با خودش میبره اون جایی که باید ببره خب بس شب های گذشته رو دنبال می‌کنیم اسباب انشراح صدر نکات عواملی که سبب میشه دل انسان و دل بنده خدا و وجودش مبارک بشه شرح بشه سیناش آرام بگیره اطمینان برش حاصل بشه تکرار میکنم چون این مسائل خیلی مهمه تا تو حافظتون بمونه اولین عامل و مهمترین چه بود هدایت و توحید زدشم بالاخره بزرگترین عامل برای استراب و ناامنی و پریشانی و تباهی و پراکندگی دل یعنی زلالت و گمراهی و شرک دوم نوری که خداوند پرد میکنه در دلی که صاحب اون دل به خداوند دل علاقمند به این نور نشان داده هدایت تلبیدنی هست نور خدا تلویدنی هست یک طرفش توفیق خداست و چیزی که توفیق جلب میکنه و جذب میکنه کنه خودتو هستیم دل خوب به خدا نشون بده دل علاق من دلی که خواستار این نور باشه که بر اون بتابه از خدا بخواه که نور ایمان را بر دلت بتاباند وگردد لد با نور ایمان درخشید دیگه تن به تاریکی در می‌بینید. دیگه همیشه می‌درخشید. دیگه اون بصیرتت خود به خود ایجاد میشه چون انسان چهار تا چشم داره دو تا چشمی که بصر بش میگه عرب و بصر اون چیزیست که محسوسات و مادیات رو میبینی و تو صورت آدمه. اما بصیرت اون دوتا چشمیست که تو دل انسانه وقتی باز میشه دیگه دورهای معنویان ماورای این مادبیات و محسوسات دیگه اصلا وصل میشه به بالا اون دوتا دعا بکنید تا خدا بازش بکنه تا اون چیزهایی که باید ببینید ببینید قرار بود امشب جناب شیخ افراز دعوت کنیم بیاد برای پرسش و پاسخه ولاخره ها یا برای پاسخ گفتم به سوالات. ولی این بحث باید امشب تمام میشه آقای افرازم امروز زحمت کشیدم با دکتر عبدالباسط خطیبیزاده تو جلسه علمی که در باشگاه برگزار شد از ساعت سبونیم تا ساعت ششونیم اونجا حضور داشتن دیگه مذرت خواهی کردن و رفتن اما مسئله سوم که سبب انشراح دل می شود علم علم نافع و مفیدی که تو رو به خدا وصل بکنه تو رو به خدا نزدیک بکنه تو رو به معنویات برسانه اون علم حالا چه علم مادی باشه دونیوی باشه چه علم مخرقی باشه مسئله چهارم که دیشب در بارش صحبت کردیم یا سبب چهارم انابت به سوی خداوند بازگشت خالصانه صادقانه با توبه به سوی رب العزت والجلال بازگشت دل و محبت خدا با تمام وجودت و لذت بردن از عبادت اینم یکی از مهمترین عامل انشراح صدر هست و پنجمین سببی که برای انشراح صدر ذکر کردیم دوام ذکر و یاد خدا حلا آب ذکر الله تطمئن القلوب پس کرولی از کرکم مرا بخانید خالصانه بخانید در همه برنامه های زندگیتون مرا بخانید جای منو از قلم نندازید من نباید از قلم بیفتم من نباید از خاطرات و تفکرات و تصورات و نیتهای شما و برنامه های شما کنار زده بشم اگه من رفتم منو کنار زدید خودتم رفتید تو بحث از کار ما درسی داریم در مدرسه علوم دینی به اسم بحث از کار اگر تو بحث ذکر وارد بشید تمامی از کار شبان روزی و روزمره کتاب نوشتن علما هر ذکری مخصوص یک جایگاه خاصی است سبحان الله ذکر ها رو که بررسی می‌کنیم تو اماکن مختلف برنامه های مختلف جملات آغاز میشه مگر یک کلمه تو همه برنامه های روزمره تو همه از کار اون ثابته و اون اسم الله یا رب یا اللهم است تو تمامی دعاهایی که وارد شده در زندگی روزمره از دعای بیدار شدن تا لباس پوشیدن تا خارج رفتن از خانه تا سوار ماشین شدن تا خوردن تا خوابیدن تا بیدار شدن تا لباس نو تا استغفار کردن همش ترکیباتش متناسب با اون عمل عوض میشه بجز یک لفظش اونم لفظ اللهش تو برو کتاب از کار رو بره بزن نباید حذب بشه نمیشه حذبش کرد اگه حذبش کردی حذب شدید از حیات و زندگی هست شدید پس حیات ما و حیات دل ما و حیات روح و روان ما و حیات دنیا و آخرت ما مرتبط به دوام یاد خدا و ذکر خداست به درجه ای که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به خلا می رفتند، از خلا که بیرون می آمدند، می گفتن غفرانه کرد, غفرانه کرد. وقتی از بیت الخلا بیرون میای قضای حاجت رفتی بیرون میای باید بگی گفرانت خدایا مغفرت از شامل حالم بگردان که چند لحظه در بیت الخلا نتونستم یاد تو بکنم ذکر تو بکنم اینجا جایی نبود که من به خاطر همین چند لحظه من مذرد میخوام طلب افت میکنم دفام ذکر خدا ماهی حیاته ماهی نجاته ماهی آرامشه ماهی صفا و سمیمیته ماهی ادالت و دادگریه کسی که بیاد خداست دیگه قاتل نمیشه مجرم نمیشه آدم کش نمیشه شیطان برش مسلط نمیشه که اون مسائل جرم و جنایت رو انجام بده امروز جناب دکتر عبدالباسد خطیبیزاده بحث سلامت میکرد داخل سه تا عنوان همایش در این جلسه ای امروز بود عبادت سلامت مودت عنوان همایش عبادتش آقای افراز بحث میکرد سلامتش آقای دکتر بحث میکرد و مودتش هم داده بودم به خدمت بزارشون خیلی جالب میگفت که اصلا آمار و ارقام که گرفته شده تو انباء بیماری ها تو رمضان بعضی 80 درصد، بعضی 70 درصد، بعضی 40 درصد، بعضی 50 درصد همه امروز کاهش پیدا میکنه و مراجعه به دکتر کم میشه. اما تو بحث مسائل جنایی و جرم و جنایت اصلا تو ایران خودمون در ماه رمضان اونقدر کاهش پیدا میکنه تو به ها مراجعه بکن به مسائل مراجعه بکن خیلی کاهش پیدا میکنه حالا این کاهش تو اگر که تعمیم بدید جهانیش بکنید بین یک میلیارد و چارصد میلیون نفر سبحان الله نسبت این کاهش جرم و جنایت و این ماه خیر و برکت و ماه عبادت و ماه سلامت و ماه محبت و ماه خیرخواهی و ماه گذشت و ماه مهربانی اگر رمضان نشانه دوستی خدا نباشد چی میتواند باشد و خداوند با این وسیله محبت و دوستی محبت و دوستی خودش ثابت کرده و بعد به ما هم گفته من با رمضان شما را ره میکنم مغفرت میکنم نجاتتون میدم شما هم با رمضان یاد من باشی و همدیگر را نجات بدید و همدیگر را با رمضان دوست بدارید و با برکت رمزان دور هم بر عبادت جمع بشید بر سفری من جمع بشید قرآن و معدرت الله علالعرض قرآن خداوندی است که گسترد شده بر روی زمین کسی هست که سر این سفره بنشینه علا و ذکر الله تطمئن القلوب پنجمین عامل انشراح صدر علم نشرح لك صدرک دوام ذکر و یاد خداست لا و لسان و کرات ذکر الله نگذار که زبانت خشک بشود از یاد خدا همیشه این حدیثه همیشه میگه تلاش کن که زبانت خیس باشه مرتوب باشه با ذکر و یاد خدا و وقتی ذکر زبان عادت کرد کم کم به اینجا کشونده میشه کم کم به پایین کشونده میشه چی یعنی یک از علما میگه 20 سال با خودم جهاد کردم تا تو این لا اله الا الله از زبان به دل ببرم که یک وجبم بیشتر فاصله نداره یک وجب بیشتر نیست 20 سال طول کشید تا تونستم بکشمش پایین اونجا استقرارش بدن اول با زبان تمرین بکنید بعد کم کم دلم چه همگام و هماهنگ با زبان میشه بعد چشم هم همچنین گوشم هم همچنین بعد کل اعضای بدن بعد کل زندگی تو همه برنامه ها دیگه اگه میخوای غذا بخوری نمیتونی بدون بسم الله بخوری دیگه اگه میخوای بخوری نمیتونی به بچه ها هم بگو که اینا ذکرها و کار این برنامه هاست که اگه یه وقت یادت رفت بچه‌ت میگه بابا بسم الله نگفتی ها سفره است شده یا نشوده این زمینه رو پراهم بکنین اما ششومین آمل انشراح صدر چیه؟ اون از عبادتش اون از توبهش اون از توحیدش اون از علمش ششومین آملش به نظر شما چیه؟ امل قیم در کتاب زاد المعاد میگه که رحمت الله علیه ششومین سبب انشراح صدر به عربیش می کنم که خیلی لذت بخشه الاحسان الى الخلق و بما بما یمکنه من المال والجاه والنفع بالبدن و الاحسان سبحان الله نگه شیشومین آمل انشراح سدر احسان و نیکی کردن به خلق خداست. پیامبر صلی الله علیه و وسلم ازش سوال کردن که بهترین بندگان خدا چه کسی است. میدونی جواب چی داد؟ نگو کسی که نماز میکنه روزی میگیره نماز شب میکنه فلاح میکنه فلاح میکنه. گفت انفعاهم ناس سوال کردن بهترین عباد الله چه کسی است از نظر خدا؟ وف انفعهم للناس برای خلق خدا و می‌دونیم مفیدترین برای خلق خدا چه کسی است کسی است که خلق خدا را با خدا آشتی بده کسی است که حمزیر وصلی باشه نقطه عطفی باشه بین بندگان خدا و الله و ربشون و خالقشون و رازقشون و معبودشون کسی است که شناخت خلق خدا نسبت به رب العالمین بالا ببره تا بندگان خدا خدا رو دوست بدارن بشناسنش و بعد بپرستنش با جان و دل مفیدترین کاری که یک نفر میتونه انجام بده اینی که بندگان خدا را فقیح و عالم بکنه مدرسه درس بکنه اگر خودش عالم نیست مدرسه درست بکنه حزینه دانشجو بده حزینه طلاب بده دعات و دعوتگران را خودکفا بکنه نت. نه که طول زکات تو کف دستشون بذاره در مله عام دیگه 50 تا من پول زکاته که شخصیتش رو برد می‌کنه پیامبر گفته صلی الله علیه و آله لیمبعث من كل رجلين احدهما والاجر بینهما اگر خودت نمیتونی مفید باشی با علم علم نداری برای جامعه خدمت بکنی احسان واقعی بکنی مال دارید بیا با مالت احسان بکن برای دینداری جامعه علما رو تعمیم بکن طلاب رو حمایت بکن از علم و دانش و تقوا حمایت بکن از افت حمایت بکن هر کسی که اعلام کرد میخوام درس بخونم ازش حمایت بکن درس دنیاوی و درس دینی پزشک لازم دارید مهندس لازم دارید اگر خدا به داده بیا اینطوری امت اسلامی رو تقوییت بکن. این بهترین احسانه احسانی که شیفزایی خداوندش توفیق داد رحمت الله علیه در حق اهل سنت جنوب کرد بالاترین احسان بود منطقه رو سیراب کرد الان اگر ما پنگ هزار تا طلبه و طالبات داریم 140 تا مدرس و عالم داریم 500 تا حافظ قرآن و دختر رو پسر داریم و همه این طلبه های ما شاید 90 درصدشون تحصیلات دانشگاهی هم دارن این احسانی بود که دل شیخ بزرگارمون بهش منشرح شده بود اصلا تو ذاتش بود دیگه جزء خصلت و ویژگیش بود نمیتونست آرام بگیره هر لحظه میخواست نفت برسونه چرا ما تنبلیم؟ خدا ما رو تنبل خرد کرده چرا منو تو نیمیتونیم احسان بکنه؟ با یک حرف خیرم نیمیتونیم همیشه اخمیم برای چه اخمیم؟ تبستون و کفی فیوه چه اخی که صدقه این یک احسانه یه لبخن یه صدقه است. یک احسانه اتقل ناره ولو و به تم ره. یه دونه به افتاری بده سوابش رو بگیر دلش هم به دست آوردید انا و کافل و یتیمه که ها تین نه چه کسی یک سرباز و رو تجهیز میکنه براش بهشت باشه چه کسی یک چاه آبی رو فعال میکنه روان میکنه در خدمت مسلمین قرار میده چاهی رو حفاری میکنه که مردم آب بنوشن براش بهشت باشه چه کسی یتیم رو تحویل میگیره براش بهشت باشه تو نماز امشب چی میکن؟ بلا یا خود دونه على طعام الویسکی تشکیق برای طعام دادن به ویسکی خیلی کارها هست که پول نمیخواد همت میخواد یک همی همت آنچنانی هم نمیخواد حالا یه لبخند زادن چی همت میخواد؟ دو تا لباد بلند کن سپیده دندان پیدا میشه میشه لبخند سواب بگیر دل به دست بیار شاد کن ولو کنت فضن غلیزر قلب لنفدو من حولک این الله کتب الاحسان على کلشه خداون احسان و نیکی رو بر همه چیز نوشته اولین احسانی که باید بکنید به خداست و بر مبنای ایمانت تو احسان به خلق خدا می کنید احسان به پدر و مادر احسان به شاگر احسان به معلم احسان به همسایه احسان به دوست و رفیق احسان به برادر و خوهر مسلمان بازی احسانها با دعاست. باور که خیلی جوانان هستن که در گمراهی به سر می‌برن همین دعای تو کار سازه همین دعای تو کار سازه میکشونه جذابیت داره یه روز میدونید که برکت دعای خالصانه تو به کجا رسیده اگر میخوای دلت آرام بگیره من یه دوستی سراغ دارم. نیگو بچه هامو جم کردم گفتم که همش مهندس و شخصیتی هم تو امارات گفتم بابا شما میدونی که شما هم تو افریقا برادر دارید خواهر دارید تو جنوب شرق آسیا تو جاهای دیگه تو کشورهای هند و پاکستان و افغانستان اونام تو مال باباتون شریکن میدونی منظورش چی بود منزورش ایتام بود سی و تقریبا ستا ایشون ماهانه ده هزار تا من, من دیگه نمیدونم جاهای دیگه اونی که تو ایران من میدونم بعضی ماقی یتیم ها نامه براش میدونم ازش تشکر میکنن از اینکه شما قبول کردید پدر ما بشید و ما را به هر زنده قبول کردید و از ما حمایت می‌کنید، از شما تشکر میکنید از اینکه قبول کردید جای خالی بابای ما را پر بکنید که احساس تنهایی نکنیم از شما تشکر می‌کنیم. این خودش میگم وقتی این نامه ها از این اکرام میاد اصلا جگر آدم آب میشه یک آرامشی به انسان دست میده سبب میشه که چه؟ مزید تحقیل بگیریم دیگرانم تشویق بکنیم احسانه به خلق خدا با هر احسانی که ازت برمیاد هم خودت آرام میگیری هم دیگری. یکی از برکات کار خیر، اینی که آرامش به انسان دست میده همون لحظه برد و سلام احساس میکنی یک نسید خونکی بر دلت میوزه خیوزات ربانه از بالا میاد این تو چه؟ تسکین میده یکی از نشانه های قبولی کار خیر آرامش و تسکین دله و در تعریف گناه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته الافم و ماحاک پی نفسک گناه چیزی که یک خارشی در دلت ایجاد میکنه تا گناه میکنی فکر میکنی کسی داره سوزنگی زنه یک خارشی یک ناامی یک پریشانی بر عکسش کار خیر وقتی انجام میدید یک آرامش یه دانشجویی که میخواست که تحصیل بکنه تو خبرت شد مخفیانه یه پولی دستی در اختیارش گذاشتید نه صدفی که بعد شرمنده بشه بعد دانشگاه رو تمام کرد یک مهندس خوبی شد یک پزشک خوبی شد خودت لذت نمیبری اولما چقدر دقیق بودن احسان به خلق خدا گفتن یکی از اسباب انشراح صدره و پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش همش معروف بودن به عب المساکین حضرت جعفر رضی اللہ عنه وقتی در غزوه موته به شهادت رسید خبرش در مدینه و حومه و اطراف مدینه پخ شد همه فقرا و مساکین و عیتام ازادار شدن جعفر ابن عبی طالب معروف بود به عب المساکین پدر مساکین حضرت عمر هم کمتر از حضرت عبو هم کمتر نبود حضرت عثمان هم کمتر نبود حضرت عبد الرحمان بن هم کمتر نبود کدومی که شما مسئل بزنید حضرت عالی هم کمتر نبود حضرت خدیجه رضی الله و عمده اون کمتر نبود و یا الله علیه اللہ هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به درد دعوت اسلامی در صدر اسلام نخورده یک تاجر وقتی خدا بهش احسان میکنه و بعد این تاجرم احسان میکنه خیلی سراغ داریم که یک تاجر با مالش توسط یک عالم پونست تا عالم درست شده. با مالش یک آلم با مالش پونست تا عالم درست کرده مال و تبدیل به عالم کرده این فضل و کرم خدا هست یا نیست این سبب آرامش دل میشه یا نمیشه هفتمین سبب شجاعته. شجاعت، شجاعت هفتمین سبب برای انشراح صدره برای آرامش دله انسان بزدل همیشه پر اشانه. انسان ترسو جوان خائنم در میاد کسی که ترسوست یه روز سر از مخبری در میاره یه روزی میشه یه روزی جاسوس میشه و خائن در میاد همیشه پریشانه آرام نداره خواب نداره ولی انسان شجاع نه شجاعی که همیجوری شعار بده بی خود و بی جهد مردمون بکوبه به بکوبه که من شامت دارم نه شجاعت میادین خاص خودش داره و روال خاص خودش داره و ذوابت خاص خودش داره الشجاعه شما تصور بکنید اگه علمای دین همه بزدل و ترسو بودن چی میشد جامعه تباه میشد در هر زمین و زمان بیشترین زندانی ها متفکرین و دعات و دعوتگران و علمه و شخصیت ها هستن. یکی از سلاطین فرانسه می گوید بعض ما رو تختم خوابیده بودم دراز کشیده بودم یک دفعه احساس می کردم که پایه های تخت داره می لرزه یک دفعه می لشستم فکر می کردم یک آزاداندیشی قلم به دست گرفته درباره آزادی داره می‌نویسه. طرئین اعتصامی هم ابیاتی درباره اشکیاتیم داره. میگه اون لؤلویی که بر سینه پادشاهان ظالم هست اشکیاتیمه. شجاع خدا نصیب بکنه هشتم اخراج و دغل القلب من از صفات المدمومه التی توجه با و, و عذابه خارج کردنه دغل یعنی چرک های دل چرکه که نتیجی صفات مزموم هست که بر دل مسلط میشه استاد فتی در کتابش قوارب و نجات فی حیات دعات میگوید مداخل شیطان الى نفس سبعه مداخل شیطان مدخلهای گرودی شیطان به دل انسان هفت چیزه من مختصر میگم. استاد فتی در کتابش قوارب و نجات قایقهای نجات در زندگی دعوتگران میگوید. مداخل ورودی شیطان به دل انسان اینجا میگه خارج کردن چرکهای دل که دلو مسموم میکنه از صفات مزموم که سبب قصاوت قلب میشه میگه هفتاست. الکبر. الغضب الشهوه، الحسد البخل سوء و ذن العجل چنده شد؟ هفته شد یک بار دیگه الكبر تکبر اگر بر دل مسلط شد خلاص توازو حیات قلبه تکبر نابود کننده است این دغل قلبه قلبو آلوده میکنه تکبر تکبر تعریفش چیه تحقیر مردم و رد کردن حق این تفسیر حدیث پیامبره بطر الحق و غمت الناس الغضب گفته از غضب از شیطان اگر شما رو عصبانی کرد بر دل وارد میشه دیگه دل منفجر میکنه بلا فاصله برو وضو بگیر چون شیطان از آتش و آتش با آب خنسا میشه و بهترین عامل خنسا کننده غضب وضو و و جا شدن و استغفار کردن از اون حالت و در حال غضب و خشم هیچ موقع تصمیم نگیر و تربیت نکن سوم الحساب تمنای زوال نعمتی در برادری اگر اون نعمت زائل شد تو خودت هم نعمت میشی بلکه بگو خدایا به اون دادی برکت در زندگیش بنداز در نعمتش به منم از خزینه خودت مثل اون بده بدون که از اون کم بشه چه اشکال داره اون داشته باشه تو هم داشته باشی از شهو و شهوت علما میگن سه تا شهوته شهوت نفسه شهوت نفس هرچی چش ببینه دلم هوا میکنه این مال من باشه اون مال من باشه اگه این مال من باشه چقدر خوبه اگه این بوتیک مال من باشه این ماشین مال من باشه شهوت البطن شهوت شکم دیگه خودتون میدونید شهوت شکم یعنی چی؟ و شهوت الفرج شهوت شرمگاه نه اون شهوتی که با ازدواج و در مسیر خودش قرار بگیره این چند تا شد؟ چهار تا بخل بخلم بر دل وارد میشه از شیطان و یعید و کمول فقره میگه اگه انفاق کردی فقیر میشی و انسان بخیل همیشه بدبخته همیشه میچاره است، همیشه آجز درمانده است. نه از روی نداری از روی اینکه نمیتونه دلی داشته باشه که برز بیرون سخاوت داشته باشه بغل سو و زن ششم سو و زن بدگمانی پیامبر صلی الله علیه و می هیچ خیری معادل این دو خیر نیست حسن الظن بالله و حسن الظن بالناس و هیچ شری معادل این دو تا نیست سوء الظن بالله و سوء الظن بالناس بدگمانی به خدا و خلق خدا میگه بدترین شر از اون دیگه شر بدتر وجود نداره این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم. بدگمانی انسانو از خدا دور میکنه و بدگمانی انسانو از حلق خدا دور میکنه ما باید حسن زن داشته باشیم به هم تا بریم تو آگوش هم آه. این میخواد به من نزدیک بشه حتما من داره حد قصدی داره حد من, داره. حد من داره نه با اینو نمیشه اینو فلان هم اینا... تا که آخی این بد حس حسن و زن نبی ناس حسن و زن الله و حسن و به نبی ناس هیچ خیلی معادلش نیست اما هفتوم العجله هفتومین مدخل ورودی شیطان عجله است فلتعن سلامه و فلعجله ندامه در تعنی سلامت هست در عجله پشیمانی هسته اما عجله در هر کاری مضمومه مگر در پنج چیز علما گفتن عجله باید انجام بگیره یکی اگر میت واقع شد عجله باید بکنیم سریع قصدش بدیم نماز بخونیم که فنش دفنش بکنیم میت نباید بمونه عجله در دفن می دو اگر مقروض شدی بدهکار شدی عجله بکنید در اسرع وقت تو پرداخت بکنید چون اگر مردی با قرض از دنیا رفته بودید و تو دفترت هم نوشته ن... ننوشته بودید وای حالت که همینجور چه به فراموشی سورده شد پیانبر صلی الله علیه, علیه وسلم وقتی که میتی در مدینه واقع می شد سآل می کرد این میت مقروض هست یا نیست بدهکار هست یا نیست اگر به دکاره میگفتم من نماز نمیخونم روش کسی هست دینش قبول بکنه تو جلسه اگر یه نفر بولند نشه تو جمع میگفت من دینشو پرداخت میکنم یا ترکه داره میراست داره دینش چه میتونن ازش پرداخت بکنم میگفت بیارید تا نماز بکنم اگه کسی تقبل نمیکرد میکرد میگفت خودتون رو برادرتون نماز میخورین من نمیخونم چقدر مهمه امروز طرف وقتی میخواد بره قرض بگیره پیش یک تاجر پول که زیاد داره حالا من میگیرم کم کم دیگه چه به مرور زمان این خودش معیوس میشه بعدم مجبور به بخششه. شدا ها لحظه اولی که میره میگه خب این میلیونه حالا دو میلیون به من قرضیده چی میشه بعد 5 سالان چه به تأخیر میندازم بعدم مجبور میشه گزارش میکنه و چیزاها و اعتراض تکنی میخوره اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند اگر کسی لحظه ای که میخواد قرض بگیره قصدش باشه که پرداخت بکنه در اصل وقت خدا از نیست کمکش میکنه و اگر کسی منظورش لحظه اول قصدش این که پرداخت نکنه اگه ملیونر هم بشه نمیتونه اون سده زارتمن رو پرداخت بکنه اینا همش احادیث ها و چهارمین اجله پنجم، پنجمین اجله اول میه دوم قرض سوم توبه توبه هم نباید امروز به فردا بندازیم و مهمان اگر آمد باید عجله کرد هر چی هست هستش داد فردا ازش پذیرایی مفصل بکنیم نه اینکه مهمان الله شب رسیده خسته کوفته تو برید حالا گوشت و مرگی که منجمد شده در بیارید حالا مهمان داره چرت میزنه عجله برای غذای مهمان وقتی رسید اون چیزی که هستش میدید فردا پذیرایی مفصل ازش میکنید و پنجم چیزی که درش عجله شرط هست اگر دختر و پسری به سم ازدواج رسیدن در معرض خطر چه فخشا هم بودن جامعه هم جامعه سالمی نبود باید عجله کرد و سریع ها اون آتش شهوتشو سا کرد و زمینه ازدواجشون رو فراهم کرد این هفت مورد بود که بالاخره مدخل ورود شیطان یا مدخل شیطان به نفس انسان هست اما نهمین سبب برای انشراح صدر میگه ترک فضول النظر و الكلام و الاستماع و المخالفت و و اینم خیلی جالبه که متاسفانه خودمون همه انجام میدیم میگه نهمین سبب برای انشراح صدر و آخریش میگه ترک کردن نگاههای اضافی صحبت ها و کلمات اضافی که لزومی ندارد شنیدن چه و استماع به کلمات مردم و جملات مردم و صحبت مردمی که تو رو نه دن که گوش بدید. و مخالطه چند نفر اونجا نشستم به تو نگفتم بیا دوستم ندارن خود بیلین جا میزنین مخالطه در جایی که لازم نیست و العقل و خواب اضافی و نوم و خوردن اضافی و نوم اضافی و خواب اضافی اینا همه سبب چه قصوت قلب می شود و سبب پراکندگی دل می شود. خیلی ها بی خود و بی تو خیابون به همه چی میخوان نگاه بکنن. اصلا در خصوصشون هم نیست. باید نگاه میکنن اشاره میکنن. خیلی ها تو خیابون داره می رید. از کجا می چی تو پلاستیکه؟ نون تو پلاستیکه چی تو پلاستیکه؟ سیب زمین تو پلاستیکه؟ یعنی سین و میکنن چه تو پلاستیکه برای کی میبرید از کجا میایید این موتور مال خودته این ساعت مال خودته این چیه تو کیفت فلان در که فیانبر صلی اللہ علیہ وسلم میخرماین من حسن اسلام المرعه دنبالش بگی دیگه من حسن اسلام المرعه ترکوه و یعنی از کمال و زیبایی اسلام یک مسلمان ترک است. چیزی که در خصوصش نیست و بهش ربطی نداره ترک بکنه میگه از کمال و زیبایی و جمال ایمانشه ولی ما نه میخوان ایمانمون رو زشت بکنیم اونقدر سین میکنیم که آخر خودمون رو مرتبط بکنیم ربطم نداره به و وزیفه تو کنار مسلمان رسولی سلام علیکم, علیکم سلام. بابا مریض بود حالش بهتر شده از بیمارستان مرخصش کردی الحمدالله بچه ها خوبند سلام برسولید ارتماع صدای خیر خدا هدایتتان بکنه خدا توفیقتان بده چه تو پلاستیکه چه فلانه چی تو جیبه از کجا مید کجا میری بعضی ما چه دوستان هم فرونجا یه جمع اونجا نشسته حالا طرح میاد کنار پنجره نیستی قرآن هم باز کرده ولی گوششون جزون یه حالتم به خودش میگیره اگر میخواستن تو حرفش رو گوش بدید میگفتم بفرما یه مشورتی هست بعد من یه بحث خصوصیه ولی اگر سه نفرید تو یک مجلس غیر از سه نفر کسی دیگر نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن دو نفر حق ندارن یه نفر رو بکشه برن دو نفری در گوشی صحبت در گوشی بکنن تا اینکه با مردم مختلط بشن قاتی بشن به خاطر اون یه نفر ها میشه فکر میکنه اون یه نفر رو کشید خودش تنها میمونه دیگه شیطان براش مسلط میشه که این چی بود حتما درباره من صحبت میکنم میگه اگر سه نفری دو نفر حق ندارن نجوا بکنن در گوشی تا اینکه به یک جمع چهار پنج نفری برسن دو نفر اونجا بنشینن دو نفر میخواد حالا من یه کاری دارم ولی سه نفری تو بیا خودش تنها بعد در گوشش صحبت بکنید مزنه برای تسلط شیطان و نفوذ شیطان میشه و زیاد خوردن و زیاد خوابیدنم سبب قصفت دل و مرگ دل میشه زیاد خوردن و زیاد خوابیدن جماعت تبلیغ میگن کمن در خواب خور خارجز مسجد حرف دنیایی ندا، تعلیم، طاعت اندر این کار میگردد بیا باهوری جنت منه برگردنم منت نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد خیلی زیبا گفته که در خواب و خور خارج ز مسجد حرف دنیایی ندا اگه عرضه دارید ندا تعلیم تاعت اندر این کار میگردد بیا باهوری جنت من برگردنم منت نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد اینم بود اسباب انشراح سد خدا به ابن الخیم جزای خیر بده که این همه معلوماتو رله کرده و علما در اختیار ما گذاشتن خودشون که به رحمت خدا رفتن ولی هر وقتی کتابشون مطالعه میکنیم همش نف و فایده و همش هدایت و تقوی و برکت علما اینطوری هم سعبی ها و مرد نکورام نمیره در گز مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند امشب اطالعه کلام کردیم ولی شب شب جمعه است و ماه مبارک رمزانه و دو تا جمعه دیگه داریم از امشب که الان گذشت به بعد دیگه ما هر روز چهار صفحه به قرائتمون در نماز اضافه میکنیم به خاطر که میخوایم تاش بعد از ظهر پنجشنبه آینده پنشنبه دیگه نه بعدی انشاءالله تا شب جمعهش ختممونه کامل بکنیم یعنی شب 27 رمضان امسال انشاءالله ختم ترابی و تحجد صورت میگیره اگر حیاتی تمدید شد و خداوند توفیق داد که زنده باشیم و سالم باشیم و در خدمت همه باشیم با همه بته پس کمی استقامتی بالاتر ببرید احساس خستگیه نکنید شب چهار صفحه برادر منابای سماق اضافه میخونه خاطر که سه جز باید جلو بریم دیگه که امسال هر سال شب 28م بعد ما شب 29م ختم می‌کردین امسال می‌خوام ان شاء شب 27م رمضان ان ختم تراویح و تهجد داشته باشیم اینم من باب علم گفتم که